و صل الله علی سیدنا رسول الله و آله طیبین و طاهرین المحصولین و لعطا دائمت و علا اجائه مجمعین اللهم خیلی چندی هموشترین و رحمه رحمتی و رحمه رحمه رحمی از تو که در مرحس حجیت خبرواهد متعرض کلما که مصداد شدیم بیشونم همین دو قول منوچهر و مستوفم مدرس زن شدن رو طرح میدن در اینکه که این مسئله داخل در اصول هست یا نه و همون اجمالی که توضیح دادیم و جوابش هم روشن شد و راه رو که مرحوم شیخ رشید قدس الله سره به عنوان این که هل سنت تصوبر خبر واحد شا مشکل نداره ایشون اشاره کرد فرمودن اشکالی نداره و یکی از راه‌های به اصطلاح ترح مسئله است. همین راهی رو که ایشون مرموم شیخ فرموندن البته خب اینه که مردم استاد نظر دارن که این بحث ساجه به خبره طبعا خبر آراز برعدله اوله نیشه به قولای قدیمیان دوزه عوارز غریبه هست عوارز نیست ولکه ارز کردیم دلیلی بر خود اون مطلب اولا اینکه عوارز قریب و ذاتیه به این تقسیمی که درست باشه این دلیلی نیست ثانی یعنی هر نیازی نیست که عبارات ذاتیه باشه و سال سن ذکر کنیم به اینکه اصولاً نیازی به بحث موضوع نداره ثوابش اینه علایشون مبهم بود لکن روی التزام به مدارزی که اونها گفتن چرا میشه جواب رو اون شیخ گفت و در کتب اهل سنت هم بیشترین قسمتی که بحث روی جز خبر شده از اون راهه که آیه سنت ثابت میشه و آیه سنت حتی مثلا منظر هست منظره خبر نه؟ یعنی عمله به خبر اینه عمله به سنت یا آیه سنت با خبر یکیست یادند این هست این بحث پس این بحث رو میشه درست کرد اما بله انصاب قضیه بحث و خبر اختصاصی به سنت و اسلام و شریعت و دین و اینها نداره یه بحث عمومی نظر آقویب اینه که بحث کلی ما روی خبر به کلی است نه به خصوصی اینی که در سنت درسته. بحثی که ما الان میکنیم اینه اما در اصول در دنیا اسلام اینجور بحث نشده یعنی اینطور که همه اینطور بحث کرده باشن کیشون خیاض نه اون شون شما هست لکن راه صحیحش همین راستیی کهی رفتن و نکته این که جزو مسائل اصول باشه خبر به همین بحث و اغلایش نقش بسیار اساسی در استنباط داره انصافا این نمیشه این کار کرد روی مبنای عقرا و اهداف میشه از راهوارث شد به این اشغال جواب بعد محلوم استاد مست... متعرض عدله منکرین و بعدم ادله مسرطین که اولش هم آیه نبر و از قرآن پنج آیه از قرآن رو بودن اولم آیه نبع. ما برای اینکه مقداری به اصطلاق زمینه های مسئله و کیفیت ترک مسئله رو بشه غیر از اینی که چونشون از یعنی منکر و مسرط و بارد وقت شدن یک مقداری گفتیم مطرد تو کلمات بشیم خود مرگوم شیخ حضرت صلی اللہ وسیده در کتاب و قدر و سید مرتضی در ذریعه اصولا از همون قرم چارم پنجم یواشواشی مرگوم بحث هایی که به اصطلاق ما این روزی ها اصطلاقا بهش فلسخه شناخ یا نظریه شناخ میگیم اوش هم که مرگوم به علم میشه اینها در میان کلمات اصولی وارد شده حالا اطلاعش خوبه اما ما دیگه اینجا متعرض نمیشیم فقط برای اینکه که آیان مراجعه رو خواهد مراجعه کنند. در این کتاب نفاس اصول به اسطلاح مال که در شرح محصول محصول مال فخر رازیز من روی اجهاتی برگذار مطالبش رو فخر رو ردیم چون طولانی صحبت ری کن عرض می تا روشن بشه که مثلا راهی رو که شیخ وقت دیدیم میخواستم نباره هم بخواهم طولانی میشه این عبارتی روی که ما اینجا میکنیم تا بر از این بحث مطلب از فخرازی مقداریش نه مقداره معظمش مقداریش تو کلماتی سید و معتضا <تصفح> و اصول این دیگه آمده چون خود فخرازی با عنوان یک فیلسوف یا مثل کله البته از شدیم وارد این بحث شده برای آیونی ک بحث های گذشتگان رو در موارد شناخ بحث که مثلا برحث های... های تجربه چه شناختی پیدا میشه که این بحث هم اینجا انجام داده یه وقتی یه بحث کردم در لیستی که از کتاب های مرحوم فضل ابن در مصد نجاشی آماده بعض از برحث های و کتاب ها در باره علم حد داره علم اینجوریه احتمالاً از برن سه این مباحث در حوزه معلومات دینی حالا به عنوان اصول یا به عنوان کلام مطرح بوده من برای که که باوشن بشه که حتی مثل فخر رازی که فیرسو خود به حساب میاره و نجام نمتکلم هستن این بحث و, و کهیفیت ورود ایشون رو در بحث و بعضی از نکاتی رو که در بحث هست عرض میدونم ایشون مقدمه و مسائلی در مقدمه داره یکی این که اصلا تعریف خبر لحظات خبر من بحث میکنه که آن من نمیشه بعد اون ابت بحث لغویش که مثلا میگه خبر لحظ نیست مثلا میگه چشمان تو خبر میده یه شعر میاده تو خبران این ها قلب و کاسمون که خبر داریم مطلق علم انسانه نهی مخاطر درس باشه خب استعمال میشه ولا مثل همون ترتیبی که قدما داشتن ما این ما تو بود تعریف خبر عنوان مسئله دوم در این جلد سی نه خالص المحصول از صفحه 263 متعرض میشه خیلی طولانیه یعنی تا آخر کتاب دیگه ایشون راجع به این بعد تعریف خبر میدونید در قدیم رخص این بوده که تعریف می برد ما یه و عبدن عبدن می میدونیم ترده و اکثر نرده نرده ایشون سه تا تعریف برای خبر میاده هیچ شروع میکنه اعتراض کردن خیلی هم طولان این که میدونید که ما برگیم ایشون در صفحه هیه و میگه این تحریف آزیش کدونش درست نیست خلحق اندنا هم تصور ماهیت عن غنی یا شبیه بحثه که هم تو کفایه میبینی که اینا اصلا حد داره هستی نمیخواده حد نیستن حد داره نیستن این فیلم که اصلا مطبع واضحه خبر مفهوم و عرفی واضحه اصلا دیگه نیازی به این بحث ها و تعریفشین هست و تعریف نسته. مفهوم وجود که مقهوم واضحهیه خبر هم خب من رو کندم بعد وارد بحث دیگه و خبر و که نسبت داره و بعد اینکه خبر یاسف قصد و یا کذر وارد این بحث میشه بعد وارد بحث تواتر میشه خب باقرم بعد از ابحاثش نتیفه که تعریف تواتر مفصل وارد بحث تواتر میشه با عنوان خبرال به اصطلاح مفید علم بعدم این که آیا همیشه مفید علمه گاهی مفید علمی متعرضی این شده بعدم مسئله سالسه العلم حاصل عقید خبر تواطر ضروری یا ضروری نیست کیفیت وصول علم رو هم متعرض شده بیشتر عدد تیفون متعرض متکلمینه سحول حسین و سو و ابو حاشم اونا بعد متعرض یک مقدار دنبال همین بحث خبر متواطر و کیفیت علم و چی علمی که حاصل میشه چی و چی علم پیدا میشه خیلی متصل وارث شده که طبعا چندین صفحه خود ایشان حالا متعرض و غیر شرفی که قرافی داده بسیار بسیار طولانی بله خیلی دست بله طولانی انجام متعرض بر مظاهب را ممبردن. بعد متعرض شرایط تواطر شده که اصلا تواطر به چقدر چند عدد میخواد و عددشون با چقدر باشه خوبصور باشه از شهرهای متعدد باشن یه متعدد این انواع تواتر اجمالی و معنوی شده بله. بعد. بعد خبرهایی که انسان این بابی رو بارد شده برمان خبرهایی که انسان موجوده سبقه طرق سعیه اسم شده شده که هشتا تقسیم شده هشتا مثلا خبرالدی عورت و وجود و مخبری به ضروره مثل کسی که برای آن روزه ما میده روزه این سب الذي عرف وجود و مخبره به استضلال سبون خبرالله همجور اینطوری این خبرهایی که حالا برای تواتر نیستن اما ما میدونیم که این خبرهاست مفصل وارد این بحثایی که یکی ای باز یکی دوستاش که است قبول بقیه بله هشت قسم ایشون خبر آمدن که انسان به استضلال این میدونه که مثلا در اینجا در نوع هفتم همین که ما الان داریم نوع هفتمش او بی انل قرائن حل تدل علا صدق قبر ام دارم بحثی که ما داریم آیا خود قرائن مفید صدقه هست یا نه قرائن مجرد شواجده فزهب النظام و امام حرمین رازی و القذالی علی که خود قرائن علم آوره و بابون انکرو انکرو که اشعاره باشه وقت ایشون متعرض جهاتی شده که آیا اون هست یا نه هر ازم میخوام نوع کار ایشان رو بله درستون روشن بشه که در چه بخش هایی ایشان وارد شده و بعد از این بحث بحث اونایی که صدق به اصطلاح میاره طرق فاسده رو ارده در اون طرق صریحه که سوابق بله پنج نوع خبرهایی که فاسده به عنوان و مثلا اداءت برای واقع به حضرت رسول انشه این و رسول ترکل این کار ره ده قاله داده داره که از اون لعا خبر شدن در هر اینطوری بله بشون شرک میده و تفسیری بله که چند قسم داریم بعد از در این که پنج رسمش کرده بعد در این یکی از که اینجا خیلی مفیده که برای ما الان ما بحثش تو بحث اصول نمی یعنی با عنوان جانبی رد میشه. ایشون اصلا مسئله هرم سوم از این طرق خمسه زعم عبو حاشن و ترخی و تلمیزه عبدالله ان للاجماع ال على العمل بموجب الخبر ازول علم صحت الخبر میگی مثلا این خبر رو سند نداره اما اصحاب قبول کردن میگه متارضه ایشون نمیگه که ادعیه از علمای اصول این مبنا رو دارن و از خود ایشان رد میکنه وا با باطل الملکه انما طبعا فهرستوار که خیلی از مواردی که ما الان به خاطر چنبی دارید ایشون متعرض این سومش چهارونش نحوه اینکه در خلال بحث های اصولی یه مرداد سن از اخسام خبر رو روشن بکنه خاله بعضا زیدیه بقا اون نقل من ترففره دوائی علا افتالهی یعنی اگر یه خبری نقل بشه در کتب و میدونیم اونجا سعی برای این بوده که این خبر رو از ویم ببرن این, این, این علاوات قبوله یادون رو علا سخت خبر چارو می که خبر قدیر به مناسبه از بعده عقائدی که خبر قدیر و منزل مرادش هم انترانی منزه تهارو مموسا یه زیدیه یه برشت هم از سو کردن که خبر قدیر توی زمان بنی امیه هم نه شده با این که بنی امیه اصرار داشتن که خبر قدیر منکر باشن پس این دلیل و سهت چون میگم یک نهوه است. این نه نحوس فل به نقلهما که ما در زمان بنی امیه معترض دوائی هم الا اطلاع ما با این که دوائی داشتن که این خبر قدیر و منزلت رو ابطال بکنه این کلام که بعد از زیدیه ایشون میگه به حالا افسان نیست میشه این ما قبول نداریم از میگم من یکی از خولاره که جحیب فخرالدین سازو دیگران هم خیلی متعرض آراء شیعه انواع شیعه میشه به شدت هم رد کار اینقدر نیستن یک جلدش البته خوبه انصافا در این جلد مثلا ما در کتاب دیگه اینقدر آراای رو و تعرض به آراای حتی بعضی هاشون با دقت بد نیست انصافا داره و این خودش یک نقطه مستقلی یعنی واقعا اگر در زمان ما هم شون این کارو بکنیم که آراامون در حوزه های سنی اینطور نقد بشه خیلی خوب بود بعد ایشون میگه که باهاذا لیست رو شد حالا چون مقابل کلام ایشون استدلاع ایشون رو بله مدارزه رو مثلا پنجم خوب درد بکنید اعتمد کسی رو من الفقه و المتکلمی فی خصیح خبر اجماع و امسالی باندر امت فیهم فیه علا قودن خبری که تقریبا شبیه اجماع کرد. رکیم من هم من احتجب من هم من شغله به تعبیله یعنی بعضی قبولش است بعض چون هم برزم لاغل عوردنش هم ها تحویل کردن این شون از دارد و علا اتفاقه هم علا قبول دیم شبیه اجمال یعنی اجماع مرکب است که خبر قبول دارن بعد یه وابا زید بنائیدن این هم ما قبول نداریم طریقه سریعی نیست شون خوب دقت بکنه انصافاً جمله از مکاتی رو که ایشان در مقدمه عور قابل توجه و آثار خوبی داره که در کتاب ما با متاسفانه اصلا نیامده محصول کتاب های رو خوبی خوندن پس بنابراین پنج نو هم هشت نو ای که علم به صدقش داریم پنج نو طرقی که صحیح نیستن ولی ذکر شده بعد فصل بعدی رو بله فصل بله رقمان دردسته هست باشه. حالا بعدی رو خبرندگی یبطع به معنی کشدار. این صدقه اون تغییر صحیح یکم چهار طوره برعظا. یکی خبری که مثلا انسان میذونه به چیزی گمان شده به بعد وارد بحث میشه چهار تا ایشان داره و متعرض شده که کی با هم بنده. قسم ثبوت نشو که الان باز به درد ما میخوره نافع در ما نحنفی میگه از قسم سالس و حقیق داخلون تحت قسم نقله. یعنی میگه ما اگر این مطلب اینجور بود که شما میگین مثلا فرصای ازان ازان این صفتی بود که شما میگین خب باید همه نعم میکنی چرا خود علمای سنی در باب ازان اختلاف دارن ل ترافرده دوایی علا نقله علا سریل تواتر و تواتر نمیکردم اما ل تعال دینه به چون مثلا اصول دین اول تعابته یا چون آمراه جوگلی باشه که سقوط سقوط المؤزم نال مناره مثلا اوله هم ما چنی ام داریم معجزات و مقاله مجازات در لحظه بیه اگر تواتر نباشیم دروغه در اینجا رو بگه ول خلافیه همه مخالف ما تو این قسط رو فقط شیعه فا انه هم جب و زوفی مثل هادشه اللای میگن درست مثلا به شیعه میگن اگر شما میگید پیغمبرون دوازده ما خب پیغمبر میگن شو شیعه میگن نه درستی مثلا خیلی مهمه مثلا مسئله خوف و طبیعه بیننهم جنبه دو فی مثل عرشی علاوه مخالف رو ایشون به اصطلاح برده بعد, بعد متأثره از یه شیعه از, شیع از استدلال اصطلاحاتی که شیعه کردن این طوریه ایشون میگه سمه بله اینا به اموری تمستو کردن نیمیگه شیعه این نیم خود اصل مثلا احد ها امن افراد اقامه و تصمیت ها من هر امور و اجلا چون بیدین سنیا یکی یکی میگن. دو تا نیمیگن امامه سمه نزاده که لنیونقل به تواتو مسئله امامتو که مسئله هم میگه جواب میدن میگه خب سانیه ها الغرفی حیات سلات من رفع الیده این به تصمیه کل و ظالک و امور و ظاهره من نالمتون قل نقلا متواترم آن تصادفان خودش رازی فخرازی شافید و خیلی اصرار داره که باید بسم الله گفته بشه فخرازی در اول تفسیر محصل اصرار داره که باید بسم الله گفته بشه و مخالف معروف توی مساله ابو همینه که بسم الله نمیگفته همچنه ایشون اونجوری مطرح نکرده اما اشار و سالس انشقاق القمر موجزات پیغمبر و تصویح الحسا و اشباق الخلق کسی من التعام القلی و نبوع الماء بین بین امور و معظیمه من حالا تون میگه شما در نحل نمی بله. بعد جواب میده این تون جواب میده یک مقدار متعرض بله. بعد مسئله مساله اقاسیس انبیاء متقدمین ملوک مازنین ما نقل نقل متواثر بعد و جواب خودش متعدد که اینکه جواب اینها میشه که من نمیخوام گرضم این که این رو میخواستم عرض بکنم که در ایشون در یک مقداری از مسائل جنبی خبر و خصوصیات و هم تو این مقدمات توی قبل از ورود به متعرض شد نکته بعدی که داره که نکته است این نکته در مقابل نکته است که مثل ابن حزم از ایشون در عمل کرد این مسئله به این عنوانه که بعضی از اخبار رسول الله توش کذب هم هست در مقابل که گفته مثلا فرعون نبی صدق کذب بعد دا دا وارد بحث میشه یک بحث اینه که در اخبار رسول کذب هست یا نه یه بحث اینی که دوایی که چیه این بحثش خیلی بشنگ آنگه نگاه بکنم انصافا خیلی بشنگ مطالب جهات مختلفی داره بشی هم حمله می کنیم مثلا خودش علاقه این قسمت بحثش مثلا ایشون داره که داریم میگم که را علیه الكذاب در روایت ما ایشون داره مارو یعنی ان که او قال حیك کذاب علیه زمان فیلم پدر این آقا مستخراج شده برام این کجا سایق شده بر علیه بعض از شواهد بر اینکه خیلی عجیبه این روایت مارو یعنی شوبه از سه شوبه اولین اینکه کسی هست که موازه رجالی و تفتیش عن الرجال جوجه این نص علی حدیث کذاب خیلی عجیب، این, این اگه راست باشه ایشون متفرقه 160 ساله 16. زمان ما موسی جعفر با اون زودی در قرن دوم نصف همید دروح باشه خیلی عجیبه ایشون در اینجا نظر میکن بعد وارد بحث دوم میشه که این خیلی لطیفه از کلم به ما هم نهانت میکنه بشید اما خود بحثش مقام ثانی سبب کسه وقتی ایشون سبب کسه گاهی میگه مال کار صحابه و سلفه گاهی مال کار خلفه میگه اما سلف همون منظهون هم که هم سلطه دروغ نمیگفتن الا انهولو وقع ازالک لبقه حالا وجود بعد از وجل اول ثانی ساله وجودی که اینها بینشون مثلا واضحی شده مثلا آیشی چی گفته اون چی گفته چهارم پنجم این پنج بشت برای اینکه چرا دروغ در؟ اصلا شبیه این کلام در کباب سلیم از امیر المومنی در تاروز احادی سرسولده شبیه اینه قبلت اینکه که تاریخ داده همه هستونه ایشون تخلاصی از آیا حاله بحث های لطیفی رو ایشون در اینجا مطرح کرده با عنوان اسباب کس بعد سبب کس اخبار من هسته به بعدی ها سبقات بعدی یکیش رو به ملاهده نسبت داده که شروع باید ما هنو هست که ملاهده و عباطی کنسته بله رسول الله بله درگومیش رو به شیعه نسبت بسید ملاحظه ماضی لئندن امامیه یسندونه لرسول کلما سحن انده ما صح در عمت اینه یکه ای منشعه اینه شبیه اینو هم ما اعنس کردیم ابو حنیفه به جادر جعفی نسبت میداد از کردن برای اطلاع بر اون حقیل چون واقعا فخرازی هم به آراع ما تهران هم بوده متعلق به اضافه بروش این تنده شدید بر حلیشیه. و دلیلش اینه چون قالو for ل安ن محمد قال حده سمی و حده سمی جدی این به نظر به شده حدیثی، حدیث و عوی ظاهرن نازی به اون رو باشه و حدیث و عبی حدیث و جدی اینه شد حده و حده سمی جدی به نظرم حدیثی حدیث و عوی بوده دار این ماره وراته و حدیث و و جدی حدیث و رسول الله فلاح هر جهریکم الاسم اتومنی حدیثن انتا پولو قالت این ای زهر را نگم حالا آیا حاله میگه یکی از دوایی کذب همین کاری بوده که مسئله امامیه و بعدش هم مسئله کسانی که از روات اجازه کذب میده چون که از روات اجازه کذب میدهدن کذبی که به صلاح باشه و منزاله که مذبه کرامیه مثل کرامی همون مذهب رائج در دنیا اسلام بود اوائل مثلا در زمان مثل قرنهای سهون در کراسان و رابعه ها ار رغبه پول بهشون میدادن درو برو میگفتن مثل که بنی عباس درو برو میگفتن این چهار تا سبب پنج تا سبب از حلف نرم میکنه فخرازی چهار سبب هم از حلف چون خودش فهرسوار گفته و شهر داده من همون شهر فهرسوارشم یعنی مذهب فهرسوارش اجمادن نبود پس این هم بحثی که راجب این که اصولا آیا در احادیث رسول که در هست یا نه و سببش چیه این اسبابیست که ایشان مسئله بعدی رو که مسئله باز هم مسئله معروفیه که امروز هم خیلی محل کلامه تبدیل صحابه متعرض به تبدیل صحابه شده و بله از کتاب آیات اردو و از سنت اردو بعد از اون متعرض مخالفین شده و چون میخوام بگم که قیال نکنه و مخالفه و قد بالا به ابراهیم و نظام فتع نفیه نظام کرد که بار معتدلت به شدت در صحابه تقنی کرده الان ما نقل جاهز در فی کتاب القتیان و نه و نفر کنه که مجمعن و مفسرن وقت از اینجا وارد تقنه بر صحابه میشه که یکی یکی ماروگم نوجوه تن برزن بی برزن اخبارم کسیره بله, بله مثلا یکی یکی علیت به هم یک دو سه خیلی مفصل دیگه حالا دیگه راجب معاویه به دیگران چون خیلی دیگه طولانیه من وارد خوندن دیگه این موارد ایشان نمیشم که خیلی عرصه هم خیلی معشاره طولانیه خیلی رمزم به حروف گذشت در اون زمان مثلا لب لبه نیه 32 لام به اصطلاح سیه به دو سی و دو لکس و آمده اینجا بعده بعد باز بعده بحث خوارج رو مطرح کرده خیلی مفصل قده های ابن مسعود های خیلی بحث طولانی بله خیلی یکی از اون احادیث خیلی طولانیه که اون ایام ولادت از زهرام رو پیش ما جور دیگه نقل شده. در پیش ما در کتاب احتجاج طبرسی جور دیگه اومده. حکای ابن دافی مجادلات قریش آل اجتماعند معاویه امر واس و عترت نبی ولی ابن عمر کردن آیه نزرا چه بونه مغیره ابن شعبه سمع احمد را حسین امام مشتوا رو بود برای اینکه امام رو به سب بکنه بعد بعد اول اهل صحبت کرد که ان علی شتم ابا و و که پیجم عثمان مستجب به آخرشون یه وعده ان انک ربات من شر قریش صحبت های اینایی ای که بر علی امام مشتوا برمی‌گونه بعد همه اینا صحبت کردن و نسب با ان علاقه له عثمان اینا الست ذکر شده چون خب نشد مجبورن برای که در کتاب نوشته شده به هر و نسخه و نسخه برای حسن اله الا رسول الجهل برای قوم نسجیل شد حالا ما آل عنه و الحسن رضی الله عنه به تعبیرشون خطا ثم بده به شخص معاویه اول خود معاویه شروع کنه مجلس بعد اون قصه‌ای که که انکه كنت زافیون تسو بعد پدرش سوایه چیز بود و پسرش ما فرمون که لعن رسول الله از و راکبه و او و قاهده که شما مرمون رسول هست بعد سمه قال لعمر ابن العاص این نموانت صحبتو اصلا مظهر بدنامی هستی کموانت فهمو هست. که قرآنو درستی قرآن اختصم که در قرهش. بعد این آیه نشانه ای که غلطه در شنه پدرتون آزشد این هم با چه پده این راست و اما انتیب نبی معید این هم نیست که آیه اینجا اکن فاسقون به نبین ما علومو که این طبق دلی و وقت که پر خمر و پر زنا و قفل عباک سبرن و این رسول الله سبر یعنی کسی رو سر بریدن مثلا با خنجر یا شاهور سرش بودن و بید و سماه و تعالی خداوند در ده آیه همه رو مؤمن نامیده و اصلا ما که فاسقن به الاخرین و اما انتیا خطفه توی که ارزش وجودی نداری که این صحبت و اما انتیا مغیرتبن شبهگی در حد این نشتی در صحابه ازم ورده بله. بله. وارد تو این قصه هم البته ما داریم که در این قصه در کتاب احتجاج هست اما اضافه بر این هم داره استبینید بعد ایشون حکایت دوم و سوم و چهارم، و بحث های بسیار طولانی وقت در آخر خود فخر رازی بله حتی اینجا روایت هست محلی را میاره و من مارواه و کل تبیرش انه امامن سه و من هم و انه حسیم لول بعد ان مول از جورن فررت الحسینیت و داره که نفسها که محلی از اولاد محمسینه فررت العباسیه و حتی ربط الامویه مثل ازالکه فسوفیانی و سم و سلیمان ابن حبد الملک مهدی هستند و الى آخری آلا نرزنی که در اصناع بحث مقدمات و خبر واحد متعرض اینان خود ایشان آخر جوابش که ایشون میده خودش گیر می کنه زیاده تنها میگه و اما حال هلمت خائل التی ذکرتون موها فمرویتون آها. اما جوابی که همیشه دیگه رفت می که خبر وارد و بعد و اما هم بعد و عمدش اینه فعلا کل تقدیلات حال مطاین مدخورتون فیبقل اصل لده که ازکرنا ایشون عمدش اینه که آیات قرآن دلاته برای ادالتشون کرده این ببایت تو تونیم به اصطلاح قبول بکنیم مساله بعدی رو باب بعدی رو برای اینکه روشن بشه قال راضی اختلاف الناس فی در دلیل بر خبر به اصطلاح الخبر الی لا یقطع بكونه صدقا او کذبا فل اکثرون جبلوا تعبد به عقلا ببینید جبلوا ب... با اینکه اصلا الان مسئله ای که ما داریم تعبد عقلی رو توش تصور نمی کنید ول اقلون منع منه عقلا اما مجبزون ت هم منقال علاقت اقلا گ بشین گفتن انکانان صعببل به خبره ب اینکه اون نداری. ت هم منقال رقت تعبدبه و من هم منقال هم یاق تعبدبه و از این قال و و تبدبه و عل ان دلیل از سی در این اقال رو در تاریخ اسلامشون سعی کردن بیارن. وقتا لفوفی ان دیل العقلی حل دل که ما بسه چهار تان دیل عقلی به چهارونش انصداده یعنی از را مطلق بزن و ابن سوریت مننا این از و حسین الى دیل العقل دل علاقوه تعبوده که ما هم علماء ما هم چهار دیل اما الجمهور مننا و من که عبی علی و عبی قاشم و الغازی عرب و جبار که اهل رایی بوده سهران فقدر و علا ام نزیله تعبوده به از خم و عقل نمیگه خبر واحد در وجهتی اینی که گوزه خبر رو داشته پیل روایاته عدلی شرعی تصویر صحنه اختلاف واقعا قول عبی جعفر توصیل نده امامیه بیانی که از خوبی هایی که از بدی های تراب به نحو دقیق نسبتاً آراء شیعه را متعرض شده و حقوق الابعذر طوسی من الامامیه که عقلی تعبد نداریم اما شرعی داریم امکان عقلی داره اما الذين لا قالوا لم يرد تعبد و گفتن امکان داره اما تعبد بشه نشده فهم سرابون سلاس اهل اولاء انه لم يوجد ما يد الله علیه کونی حجتن فزاد جدل قطع به انه لسببات دلیل بر حجیت دل. است عدم حجیت این یک راه دوم ما على ای این همین سمات عوام اول آن منکر نوردن ما از ادله تجمعیه دلیل بر نیست سوال گروه سوم بله ان الدلیل قائمون الم تنال به مثل ابن قبه که دلیل عقلی سمه این این البته میخوام بگم با تمام درقتش این نسونه سفر رو بگذاره سمه این به عصره تمام مخالفین اتفق و جواز عمل تو لدیلا تولم سهتو میشه خبر عمل بکنیم کما فلپتبا و فشهاده و امور دنیاویه این اشتباه کرده. امور دنیاویه که موضوعات خارجی هم اما فتوا چون هر سه شهادت هم چون بیانه اصفتی بین و دلیل خاص برش داره علاقه یه حاله ایشون خود فخر رازی قبول میکنه حجیت رو که جبب از تر بوده بیدیم وقتی ایشان شها... شیش به قول خودش مطلق کرده شیش مطلق اوگرده دلیل رو مطلق تبدیل کرده شیش مطلق اوگرده برای این که عمله به خبره واحد بشه اول اول و دوم آیه قرآنه اول آیه نفر ایشون رو آیه نفر ایشون طولانی صحبت کردن یاد من نمیخواب وارد بس چون انا مواقع بسن آیه نفر نیست مثل مرموم آیه خویی از تا آیه خویی آیه نفر شدیل طولانی صحبت همیشون تحصیل مثل به اصطلاح مثل نهرگوین ها که بیشترین تحکیل ایشون آیه نفر یشون آیه نه رو خیلی طولانی صحبت کرد. ما بیشتر آیه رو بیشتر طولانی صحبت کردن. چند صفحه ایشون باید آیه نه نوشته؟ علماش و بعد چند صفحه لوغه جمله خبری خبر, خبر, خبر وادن لوغه، این ذارشون تو لوغه مراشون نه که روز و خونه گریشش شد کرد. یشون کارشون که آیه رو بیاره و جهیز ایشان اینطور استدلال میکنه وجد آینه را فی خبر وارد الا یوقدان لما کان کنه خبر فاسد غیر مقبول معللم بکن این فاسد این وجهی رو که ایشان استدلال میکنه چون مخاطب ارزیبند در کتاب استاد مصباح میخونید این وجه و که این وجه رو به شیخ انصاری نسبت دادن من گفتم استاد لکی تقریری که شیخ انصاری فرموده این کلی درها قبل از شیخ انصاری است خودم که و خلاصش اینه اگر حبر وارد مقبول نبود خدا برو اینجا آقا فاسقا بنابراین اینجا آقا نبراین از این که تعلیل شده به فاسق معروض میشه که خود حبر فیضاته مشکل نداره فاسق بودنش مشکل داره این همین مطلب بله همین مطلب رو فخر راضی داره وارد بحث میشه صفحه بحث صفحه بعد میان منن ناس من تمستا که بله آیه علاوه این آخر و هو ان نه تعالا عمل به تسبب بشرط اینه که کنار خبر آس هادرن اند الفازه این تخلیه بیکیشند در اینجا داره این همین تخلیه این بزرگی که وای آمده این همین تقلبی که وای آمده بیاین عنوان ان نباید این کنار جایی بیفازه رنده از تسببت وی پس من اینجی نه که آن نباید نمی‌کند جایی بیفازه رنده از تسببت وی این همین رو، که مکم و معنای مکم شد باشه، اینجا فخر راضی آورده. اون وقت مسلک سوم سه وام، دلیلششون عایق خویم ادله روایات، عایق خوی چهار تا ادبروا کرده، ایشون چند تا از روایاتشو رو آورده و بررسی کرده، مختصر آورده، چون زیاد روایاتشون مختصر آورده. مسلک که چهارم هم اجتماعه که ما هم داشتیم می‌گیادون باشه، مربوط عایق خویی هم، مسئله اجتماع رو با پنج تقریب نقل کردن بعد ایشون وارد بحث اجماع شد طولانی هم بحث شده بله یعنی در این سفیه 573 از کنند خیلی لطیفه بعد من جمعه از اشکالات کشیه مثلا اشکال دارند و بله چینون چنا بعد دیگه در امامیه، این چون بعض از مذاهب امامیه نقل کرده سل اخباریون من هم خیلی‌ها که در زمان ایشون مع ان در قدیم زمان ما کند الا ممنو که چنین میگه غالبا صابره شیعه اخباری میذنه اشاره به قم بده میشم که راه بوده فخام لا یا یاولون فی اصول دین فذر انکرو الا ال الا على اخ... الاخبار درست هم هست انصافا درست در میگه شما میگید امامیه مخالفن امامیه قدماشون که اخباری هستن گفن قدما همه هم اخباری هستند فلاخباریون من هم معن کسفت شیعی قدیم زمان ما, ما کاند الا من هم منون شد مثلا از قوم به بعد و خراسان اون طرف بیشتر اخباری بودن فهم لای و اولون دین و اصلا تو اصول دین هم خبر اول بکن چه بسید فروع دین فهم لای و اولون فی اصول دین فضلن انفروعی الا علی الاخبار بله انتی یرون ها ان اعمت شبیه همه همیت مرحوم شیخ توسی میزنه اجماع تاها پویی مهمر اصولیون فعبو جعفرن توسی واپر همه علا داره ایشون هم مثل ما هست خبر واحد اجهر میدونه فلم یه بخیر من منیون چرال علم هادا اللل مرتضا مخالف اصلی فقط سید و مرتضا من قلیل من اتباعی این مختصری هم دنبالی خیلی عجیبا مثل ابن ادیوی سنان با دنباله روی سید موزه اصلا ابن ادیوی سبن زهر مثلا سار مجموع بیان خیلی همین متکلمین ما و مفسرین ما به دنباله خیلی تعبیر عجیبی داره مع خلیل من اطباعی فلای و ستب اتفاق و مثلها در جمع علمکابرت ضروریات اینا حالا مثلا این عزد رفعی بیان امور ضروری رو منکر بشن مشکلی نیست مکابلت در این عرض کنم در بحث به خودم که فخرازی نسبت به سید مرزا که سید مرزای کار عجیب میکنه مثلا اون رو بدیهی و بازه امکار میکنه. این مقدار فلای و سبت اتفاقه مثل آدار چند علم مکابره به ضروری و بعد متعرضه بقیه بحث میشه. این هم مسلک چارم مسلک پنجم که قیاسه مسلک ششم هم دلیل عقله. دلیل عقله که این که ما هم داریم. در ذر محتمل ایشو متعرض در ذر محتمل اون وقتا بله بعده راجع به این مساله ذر محتمل خصوصیشون یه در چیز و عامن منکرون از این صفحه 578 هم وارد بحث منکرون میشه که اصل مرو تاریخی منکر رو اول آوردن این تماسی وقتی ما مهلسا کلاسی بود که هر مسئله و اخوار مسئله به کیفیه مسئله به مسئله به چنبی که در واقع خبر خبرباهه بود خب این میشه که واقعا مسئله فوق الازه بود انصافا اهمیت فوق الازهی داره حالا ما خواد درستش به سونن ورگرده ورگرده ما در مسائل شریعت احتمال در اون خبر فوق العاده زیاده یه روز با آقای خود نمیرسی Allah'a <laughs> l-Qur'a l-Qur'a